زمایم فصل پنجم جاندارک سر والتر اسکات نویسنده انگلیسی قرن 19 سرگذشت ژان را بازگو کرد و سایه های سیاسی را که ژان را در نقش یک ساحره نمایانده بود کنار زد اتهامی که دستگاه تفتیش عقاید بر اساس آن او را سوزانده بود در این قطعه از محاکمه جاندارک اسکات سیر کارنامه کتاه جان را شرح می دهد و تاکید می کند که او عزت و شرف را به فرانسه بازگرداند. در فوریه سال 1429 که جان دارک از وکلور پا به بیرون گذاشت، انگلیسی ها در همه جا پیروز بودند. بخش عمدهی کشور را در شمال لوار شامل پاریس و رایمز در اشغال داشتند و سپاهشان درگیر محاصره اورلئان بود. وقت و اقبال وارث تخت و تاج پادشاهی که مشاوران بیوجدان احاته اشت کرده بودند، خزانه اشتوهی بود و حتی مادر خودش مشروعیتش را انکار می کرد در پایین ترین حد خود بود. پانزده ماه بعد به هنگام اسارت جان در کمپین این تصویر به کلی تغییر کرده بود. محاصره ی آن شکسته شده بود. مهاجم متحمل یک رشته شکستهای عمده شده بود، بیشتر سرزمین های آزاد شده بود و شارل وارث تاج و تخت در رایمز تاجگزاری کرده بود. به محاکمه کشیدن ژان یک ضرورت سیاسی برای دشمنان او بود. نه تنها باید نشان داده می‌شد که تاجگزاری وارث تاج و تخت بی اعتبار است بلکه برای روحیه ارتش انگلستان اثبات این که موفقیت حریفانش یک سرمنشه شیطانی داشته اهمیت حیاتی داشت. گزیده زیر نوشته یان هاوس عقاید او را در مورد قابلیت کشیشان ناشایسته نشان می دهد. این گزیده برگرفته از کتاب رونالد رینتون به نام کلیسای قرون وستاست. گزارش هایی از سومعی راکنی به من رسیده است که ادهی پزشک محکوم شده اند. نخست آنکه این عقیده خطایی نیست که پاپ اعظم، در امور مربوط به سرپرستی خود قدرت مطلق ندارد و اگر مرتکب گناه کبیره شود حق امر و ندارد در رساله اول یوحنا میخوانیم که به کسانی که او را پذیرا میشوند این توان را می دهد که پسر خدا شوند این توان تسکیه در خور ستایش و تغذیه روحانی تنها به عاشقان راستین و نظاهری مسیح داده می شود از این چونین برمی آید که کسی که مرتکب گناه کبیره شده باشد چنین توانی ندارد که به نفه در خور ستایشی خود یا پیروان مسیح را تغذیه معنوی کند. هیچ گر مناسب و اواید کلیسایی هیچ کشیش فاسق بطپرستی هیچ کشیش محله منحرفی پاپ یا کاردینال غلابی عاشقان دنیا نوید دهندگان دروغین آمرزش ریاکاران روحانیون آزمن و نفس پرست معتادان به جرایم مهلک که سنت‌های خود را میستایند و شریعت‌های مسیح را خار می‌شمارند چون این حق و توانی ندارند بنابراین اشتباه یا بدعت نیست که گفته شود کسی که در این روزها پاپ اعظم یا هر اسقف یا کشیش دیگری نامیده می‌شود اگر مرتکب گناه کبیره شده باشد توان یا اختیار دادن مجوز امر و نه در خصوص وفاداری به کلیسا را ندارد.